سلام دوستان امشب میخوام که درباره یکی از دوربین هایی صحبت بکنم که تازه معرفی شده یعنی در واقع همین امروز معرفی شده دوربین بلک مجی که این دوربین در واقع اسم کاملش هم هستش پاکت سینما کامرا 4K این یک دوربین جدیدی از بلک ماجیک دلیل اینکه این دوربین خیلی نظرم رو جلب کرد که در موردش صحبت بکنم اینه که این دوربین خب قیمتش خیلی ارزونه با توجه به امکاناتی که داره و حالا میگم که چرا با توجه به این امکانات انقدر ارزونه اول اینکه این دوربین دوربین ساخت شرکت بلک ماجیک هستش بلک ماجیک یکی از معتبرترین شرکت‌های استش که دوربین فیلم برداری سازه و دوربین های اون با اینکه خیلی کوچیک و جمع و جورن تقریبا تو حد اندازه همین دوربینه DSLR مثل 5D و, و اینا تقریبا تو این اندازه هاست ولی خیلی این دوربین ها کیفیت فیلمبرداری و امکانات فیلمبرداریشون بالاست بلک ماجیک این دوربین رو که ساخته اندازش خیلی کوچیکه یعنی ظاهرشه که نگاه میکنیم تقریبا اندازه این دوربینای بدون آینه یا همین میرو و اسمش هم که گذاشه پاکت به معنی جیبیه حالا البته واقعا تو جیب جا نمیگیره ولی واقعا این دوربین خیلی کوچیکه بعد این دوربین میتونه 4K فیلم برداری بکنه برگردیم به 2013 2013 بلک ماجیک یک دوربین رو معرفی کردش به نام بلک پاکت سینما کامرا یعنی این همین بود اسمش فقط آخرش این 4K رو نداشت یعنی تقریبا اون موقع این یکی از بهترین دوربین بودش که برای فیلم برداری تو این سایز بود اون موقعی میتونستش فولشتی فیلم بگیره ولی فیلم خام میگرفتش یعنی فیلمی که شما بعدا میتونستیم ویرایشش بکنین عین فیلم های دوربین های سینمایی از اون موقع خب همه ما منتظر بودیم که بلک مجیک این دوربین رو ارتقا بده و واقعا ارتقایی که الان داده خیلی خیلی دوربین خوبیه چون که اون دوربین مدل قدیمی تر هزار دلار بود و الان این دوربین دلاره. بعد خب 300 دلار افزایش قیمت برای این امکاناتی که روش گذاشته فوق العاده است. تلایک روی این دوربین یه دونه حسگر میکرو گذاشته. میکروفورتر دا همون حسگره میکرو 4 یا حالا میکرو چهارم 4 بعضیا میگن. حسکری هستش که روی دوربینای اخیری که مثلا پاناسونیک و اولیمپوس اینا دارن میزنن همین دوربینای عکاسیشون روی ندارن دارن این حسکر روی اونا هم هستش ریزولوشنش هستش 4096 در 2160 که تقریبا حدود 8 مقاپیکسل میشه ولی یادمون باشه که با این 8 مقاپیکسل با تمام سطح این حسکر فیلم برداری میکنه یعنی اینطور نیستش که مثلا مثل خیلی از این دوربین ها باشه 8 مگا ولی با 2 مگاپیکسل یا مثلا توی اونایی که 4K میگیرن با 4 مگاپیکسل وسط این کار کنه خود بلک مجید میگه که با تمام سطح این حسکر فیلم برداری میکنید بنابراین اگر که یک لنز میکرو فورترز رو رو این ببندید چون این لنزش عوض میشه این دوربین مثل دوربین های اولیمپوس و پان لنز این عوض میشه و اتفاقا همون لنزام هم میخوره چون اینا یک استاندارد رو دارن اگر که اون لنزار رو ببندین تصویر اصلا زوم نمیشه تصویر اصلا جلوتر نمیره همون تصویر یعنی همون چیزی که با هنگام عکس برداری میبینین اینن همون هم میتونین باش فیلم برداری بکنین یعنی مثلا اگر شما یه دونه لنز مثلا از لنزایی که الان برای میکرو فور مثلا فرض کنید شما یه تونی 45 پاناسونیک لومیس جی رو ببندین روش یا مثلا الان لنز داره 12-35 پاناسونیک همی لومیکس جی مثلا اگر شما این لنز رو ببندین ذریبش همون دوه یعنی همون ذریبی که روی میکروفورت ادام موقع عکاسی هستش و با 24 میلیمتر شما میتونین فیلم برداری بکنید بدنه این دوربین اینطوری که داره صحبتش رو میکنه بدنه کربون فیبر پلی یعنی کامپوزیت پلی که خودش میه که توی اسپیس شاتل استفاده شده یعنی توی شاتل فضایی استفاده شده از این بدنه و بدنه که خیلی هم محکمه هم خیلی خیلی سبکه. بعد نکته خیلی جالبی که در مورد این دوربین هسته حالا اگر که ظاهرش رو هم ببینید عکسش رو ببین متوجه میشین. ریافت و طراحی این خیلی شبیه به دوربین عکاسیه یعنی یه گریب داره اینن مثل گریبی که توی دست قرار میگیره بعد اونجایی که خب دکمه شاتر فیلم قرار میگیره اینه دکمه شاتر عکاسیه کنار هم اون یه دکمه کوچیکم هستش که اون شاتر عکس برداریه یعنی که این دوربین به غیر از این که فیلم برداری میکنه عکاسی هم میکنه همزمان یعنی شما داریم فیلم برداری میکنین اگر اون دکمه عکس رو فشار بدین همون لحظه یه دو عکس 8 مگا پیکسیلی هم میگیره که عکس بدی هم نیست عکس 8 مگا باهاش راحت میتونین مثلا یه دو عکس 50 در 70 چاپ بکنین بعد به غیر از این خیلی دکمهای دیگه هم اضافه کرده یعنی وقتی که روی دوربین رو نگاه میکنین دکمه اختصاصی برای حساسیت ایزو گذاشته دکمه برای مثلا وایت بالانس گذاشته دکمه گذاشته واسه دیافراگم شاتر رو تغییر بدین خلاصه خیلی روی دکمه در دکمه خاموش کردنش همون بالا هستش این دکمه ها رو دکمه مستقیم براشون گذاشه یعنی لازم لازمیه که توی منو برین پشت دوربینه که نگاه میکنیم یه دونه LCD پنج اینچه LCD پنج اینچ شما روی دوربین های DSLR نداریم به این علت که سایز خیلی بزرگی هستش و خیلی از بدنه پشت رو میگیره ولی برای فیلم بعداری خب لازمه چون شما لازمه که باش بتونید کادر رو راحت ببینین این LCD تاچه اونطوری که خود بلک مجیک گفته نرمخزار روش داره که میتونی ازش استفاده بکنین عینه همون رسسا مینی هستش یک دوربین دیگه یعنی بلک مجیک داره که البته خیلی گرون قیمت خیلی رده بالاست بعد میگه که OSI که روی اینه یعنی همون سیستم عاملی که روی این دوربین هستش همون سیستم عاملی که روی رسسا مینی هستش یعنی شما مثلا میتونین روی تنظیممات که می‌خواید یه بار بزنین و انگشتتون رو به یه طرف بکشین اون تنظمات رو زیاده کم می‌کنه. خیلی این روشش راحته توی هیچ کنون از کنان رو نیکنم من این رو ندیدمش خیلی چیز جالبیه این نمایشگره جدای از این که خیلی خوب نشون میده کنارش یه دونه یعنی کنار دوربین یه دونه خروجی اشتیمایی هم هست که میتونه اشتیمایی کلین بهتون بده منظورش از اجتماعی کلین این هستش که این توضیحاتی که روی تصویر میبینین رو موقعی که داره از اون DMI خروجی میده این توضیحات نمی بینین مثلا فصلکن اینجا داره نشون میده که چند دقیقه فیلم برداری کردین باتری رو داره نشون میده نمیدونم هیستگرام رو داره نشون میده اینها دیگه روی اون خروجی HDMI دیده نمیشن این اینکه وقتی اون DMI رو مثلا شما روی یک تلویزیون میندازین یا اون رو میاززیش روی یه رکوردر روی اون که میازین تصویر تمیز می تصویری که بدون توضیحات هستش. البته خب این قابلیت هم داره که برخی از توضیحات رو خودتون اضافه بکنیم و مثلا به این که این توضیحات روش بیاد مثلا کانتر یا همون شمارنده زمان فیلم برداری روی اون دیده بشه اما چیزی جالبی که در مورد این دوربین هستش همون امکانات فیلمبرداری برداری هرفیشه. کنار دوربین یک دریچه هایی هستش یعنی یک هست این درایی که باز میکنین پشتش گفتم خب اون بغلش یک دونه خروجی اشتماعی میبینین اما بالا یه دونه ورودی میکروفون سوانیمی هست سوانی میلیمتری همین میکروفون معمولی این همین میکروفونی که منم دارم الان باشه کار میکنم یه دونه خروجی هدفون هستش باز اونم از همین 3.5 میلیمتريا که میتونین هدفون رو وصل بکنین بهش بذارین روی گوشتون و همزمان که دارین فیلم برداری میکنین صدا رو دقیق باهاش گوش بدین زیر اون سه تا درگاه دیگه وجود داره که اینا خیلی درگاه‌های یکی چون یه دونه درگاه هستش برای شارژر که یه دونه سیم استاندارد بهش میخوره سیم استاندارد پاور کانکتور که این هم میتونه دوربین رو روشن نگه داره هم میتونه همزمان باتری رو شارج بکنه جالبه بهتون میگم باتری هم که روی این هستش همون باتری هستش که پی دوربین های کنان فا ودی و فا ودی مارک تو این استفاده میشه ورودی شارژر هم میتونه دوربین روشن نگه داره مثلا فرض فذکن شما میخواین دو ساعت ساعت از یک سینار فیلم برداری بکنید دیگه راه میشش باتری عوض بکنین و جالب اینجاست که این قفل میشه یعنی دیگه اینجوری هم نیستش که دوربین داری جابجا می کنید یه دفعه سیم باتری در بیاد بینون باتری اگر نداشته باشین دوربین ممکنه خاموش بشه ولی این قفل میشه و اون سیم دیگه در نمیادش. به غیر از اون دو تا درگاه دیگه هم اینجا می‌بینیم دو تا پورت دیگه هم هستش یکی از این پورت‌ها پورت یو اس پی این usb اس یه چیز خیلی فوق‌العاده است بذاریم من همینجا بهتون بگم این اولین دوربین بلک هستش که این امکان رو میده شما به جای اینکه از ریکوردر استفاده کنین به جای اینکه از هاردای اس SSD استفاده بکنین بیایین و هارد یا فلش درایف همین کل دیسکای رو که یو اس پی هستن رو وصل بکنیم به دوربین و مستقیم روی اون زبط بکنید تصویری که از این منتشر کرده سایت بلک ماجیک خیلی تصویر جالبیه. اگر که شما ببینین یک هارد کوچیک سامسونگ دست اون شخصه. از این هارد اکسرنال که میگیریم مثلا روش اطلاعات می‌ریزیم، این هارد یو اس هستش. بعد اون USB-C رو وصل کرده به دوربین و داره نشون میده که این دوربین میتونه مستقیم روی همین هارده اکسترنال معمولی که خیلی هم ارزونه تو بازار زیاده میتونه مستقیم روی این هاردام هم زبط بکنه همچنین میتونین شما این کولیسکا رو هم که USB-C میخوره بیارین مستقیم بهش وصل بکنه الان تو بازار خیلی زیاده و خیلی ارزونه بنابراین از این لحاظ هم یکی از ترین، دوربینه بلک مجیگ در میادش برای یوزرها اما غیر از اون اینجا یه دونه پورت آدیا هم داریم میبینیم این پورت آدیاه پورتی هستش که یه دونه مینی اکس ال آره جالبه الان دارم سایت پتا پیکسل رو میخونم این رو اشتباهی LXR نوشتتش این ایکسلارا در واقع همون درگاه هایی هستن که میکروفون هایی بهش وصل میشه مثلا میکروفونهایی که روی این گان میذارن یا مثلا میکروفون هایی که برای صحبت کردن و تو سمینار و برای زبط صدای هرفهی اینها استفاده میکنن اون میکروفون ها رو شما میتونید به این وصل بکنید البته این مینی ایکس یعنی همون ایکس اصلیه به این وصل نمیشه چون اونها خیلی بزرگن یه تبدیل میخوره ولی مهم اینه که این ایکس رو میتونید وصل بکنید ایکس ای که فانتوم پاور 48 ولته و خب میدونین که میکروفون های حرفه ای همه با این پورت وصل میشن بنابراین شما میتونید این رو هم بهش وصل بکنید خوبی که در مورد این دوربین هستش من در گفتم این هستش که همه سری لنز های میکرو ها به این میخورن که میدونیم لنز خیلی زیادی هن این درگاه رو این مانت میکرو رو چند سالی هستش که خیلی از شرکت ها مثل پاناسونیک و لیمپوس دارن این رو توسعه میدن و خیلی برندهای دیگه مثل سیگما مثل تمرون اینها ها هم اومدن برای این دوربین لنز ساختن لنز میکروفورته تو بازار خیلی زیاده از اون مهمتر اینکه چون این ماند خیلی استفاده میشه خیلی منت پرکار بردی هستش خیلی شرکت ها اومدن برای این ماند مبدل هم زدن یعنی شما میتونید مبدل این منت رو بخرین همون لنز کنانی رو که دارین سری EF یا مثلا لنزهای سری PL دارین، لنز سینمایی دارین، میتونین اونها رو بردارین، ببندیم روی این مبادله و این مبدل رو ببندیم روی بلک مجیک. یعنی مثلا فرض بکنین شما لنز 85 پرایم کنون رو دارین، خیلی تصویر خوبی داره، خیلی بکه زیبایی داره، میخواین اون رو بیارین و روی دوربین بلک مجیک ببندین. فقط کافی هستش که این آداپتورش رو بگیرین، این مبدل رو بگیرین، لنز رو ببندین روی اون مبدل. و با اون مبدل ببندین روی دوربین همه امکانات لنز رو هم شما میتونید از روی دوربین با این مبدل‌ها کنترل بکنید یعنی از روی خود دوربین میتونید دیافراگمو ببندین باز بکنین فوکوس بکنین فوکوس خودکار و همه این کار رو میتونین روش انجام بدین بال این دوربین یک دو تا نقطه دیگه هم هستش که باید بگم اولین اینکه میتونید از طریق بلوتوث اون رو به صورت بی سیم یا وایرلس کنترل بکنین همچنین روش یک نرم افزار مخصوص هم میدن نرم افزار داوینچیه که مخصوص همین دوربین هستش و طبیعتا اون رو هم دیگه لازم نیستش نسخه یک کرک شدهش استفاده کنید نسخه اصلیش رو میگیرین ضمن روی خود دوربین هم 4 تا میکروفون هستش که صدا ضبط میکنه صدای با کیفیت خیلی بالا و همچنین دارای پورت‌های های کارت SD و کارت CF هستش یعنی شما هم میتونین کارت های SD رو بهش بزنین هم میتونین کار... کارت های CF در واقع همون سی رو بهش بزنین نه اون سی, سی اف ها رو البته یادتون باشه اگر میخوان با فورکشش فیلم برداری بکنین باید حتما کارتتون سرعت بالا باشه یعنی نمیتونید دونه ی معمولی که سرعت پایین داره مثلا 80 مگابایت رو بردارین بزنین به این و فورکی فیلم برداری بکنین ولی خب خوبیش اینه که اون تیR رو میتونین بهش وصل بکنین بعد بالا فاصلم استی رو میتونید دربیارن بزنین به مثلا لپ تاپتون و فیلم ها رو روش کپی بکنین نکته مهم در مورد این دوربینی هستش که این تقریبا هم قیمت 80 دیه. یعنی اگر یعنی اون باشه که یک دوربین بسیار ارزون قیمت فور که فیلم بعداری میکنه فیلم بعداری فوقالدره فیی با با قیمتی تقریباً همراه یک دوربین میان رده که همین الان توی بازار خیلی زیاده و خیلی هم دارن میخرن و میدونیم الان هشتادی اجارش توی بازار فکر میکنم که حالاشه هفتاهشته زارتمن باشه روزی بنابراین شما میتونید با اومدن این دوربین احتمالاً این دوربین رو هم با همین قیمت اجاره بکنید یا شاید مثلاً بتونید بخیرنشون خیلی هم گرون در نمید از اینکه این پادکست رو گوشت دادین ازتون ممنونم امیدوارم که به دردتون خورده باشه خیلی ممنون میشم اگر که شما نظراتتون رو به من بگین من این پادکست رو دارم میذارمش روی وبسایت شنوتو شنو تو یک وبسایتی هستش که ها رو ما میتونیم رو شیر بکنیم و بهمون به یک کدی میده که ما میتونیم اون کد رو بذاریم توی وبسایتمون و مثل الان شما میتونیم مستقیما این رو روی وبسایت گوش بدین بدون اینکه وارد اون سایت بشین همچنین من این رو روی جاهای دیگه مثل شبکه اجتماعی مثل کانال هم میذارم و اگر که به من راهنمایی بکنین اشکالاتم رو بهم به بگین به هم بگین که چجوری میتونم این پادکست رو بهتر بکنم خیلی از شما ممنون میشم ضمن که یه خبر دیگه این پادکست رو من سابش کردم روی آیتونز و احتمالاً از یکی دو روز دیگه وقتی که روی آیتونز اسم من رو سرچ میکنین یعنی میزنین امیر یاری یا اینکه اسم وبسایت یعنی دیجی میج رو اونجا سرچش میکنین این پادکست رو اونجا ظاهر میشن میتونین رایگان گوش بدین و این خیلی خوبه که داره در اونجا میادش از اینکه با من همراه بودیم ممنونم سعی میکنم محصولات دیگه یا مطالب دیگه مرتبط با عکاسی رو که میبینم و به نظرم جالب میادش رو به صورت پادکست با شما شعر بکنم خوب یه پادکست اینه که لازم نیستش دیگه بشینین و نگاه بکنین میتونید توی ماشین توی مترو توی اتوبوس تو مسیری که دارین پیاده روی میکنین توی باشگاهی که دارین ورزش میکنین میتونین رو بذارین راحت گوش بدین و خیلی از شما ممنونم من امیر یاری هستم از وبسایت digimage.ir